عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. حالا ما وارده کتاب اول قهرانتیان از عهد جدید شدیم. شما متوجه خواهید شد که مطالعه این کتاب که یکی از کتاب مهم کاربری برای کلیسا هاست چه سودی خواهد داشت. شما متوجه خواهید شد که در کلیسه قهرانتوست چه مشکلاتی وجود داشته و بعضی از اونها چقدر به مشکلات کلیسه ما نزدیکه. در کلیسا مشکلات نظیره تفرقه، بی اخلاقی، مشکلات قانونی، ازدواج و سوء تفاهم درباره عطایای روح القدس وجود داره. امیدوارم که در حمیه کلاس که به بررسی اول و دوم قرنتیان میپردازیم با ما همراه باشید. عمیق ترین نامه شبانی پولس رسول که برای کلیسای قرنتوس نوشته شده، اینطور شروع میشه. از پولس که به خواست خدا فرا خوانده شده است تا رسول عیسی مسیح باشد و از برادرمان سوستنیس به کلیسای خدا در قرنتوست که در مسیح عیسی تقدیس شده و فرا خوانده شده‌اند تا قوم مقدس خدا باشند. همراه با همه آنان که در هر جای دیگر نام خداوند ما عیسی مسیح را می‌خوانند که خداوند ما و نیز خداوند ایشان است، فیض و آرامش از سوی خدا پدر ما و خداوند عیسی مسیح بر شما باد من همواره خدای خود را به خاطر شما و آن فیض خدا که در مسیح عیسی به شما بخشیده شده است سپاس میگویم. زیرا شما در او از هر حیث قنی شده اید در هر نوع بیان و هر گونه معرفت چنان که شهادت ما بر مسیح در میان شما به ثبوت رسید از این رو در همان حال که مشتاقانه ظهور خداوند ما عیسی مسیح را انتظار می‌کشید از هیچ عطایی بی‌نصیب نیستید او شما را تا به آخر استوار نگاه خواهد داشت تا در روز ظهور خداوند ما عیسی مسیح بری از هر ملامت باشید امین است خدایی که شما را به رفاقت با پسرش خداوند ما عیسی مسیح فراخوانده است ای برادران به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما تمنا دارم که با هم توافق داشته باشید تا در میان شما تفرقه نباشد و همگی در اندیشه و رأی با هم متحد باشید. از برادران من اهل خانه خلوعه به من خبر داده اند که در میان شما جدال ها هست. به این ترتیب پولس نامه خودش به قرنتیان رو شروع می کنه. این نامه که ما بهش اول قرنتیان می گیم از نامه پولس رسول به رومیان خاستر هست. نامه پولس رسول به رومیان همونطور که قبلا گفتیم یک شاهکار الهیاتیه و اگرچه شاهکار پولس رسوله ولی به اندازه نامه پولس به قرنتیان خاص نیست. نامی که ما به اسم اول قرنتیان میشناسیم یک نامه شبانی هست. پولس برای کلیسایی می مینویسه که به خوبی اون کلیسا رو میشناسه وقتی که پولس برای کلیسای روم نامه مینوشت تا به حال به اونجا سفر نکرده بود. او میتونست به کلیسای روم همون چیزی رو که به کلیسای کولوسی گفته بود بگه که اونها رو به چشم جسمانی ندیده بود به این خاطر که او وقتی که نامه رو مینوشت به کلیسای روم نرفته بود بین این نامه و نامه های دیگر پولس به کلیساهای روم و کولوسی فرق بسیار بزرگی وجود داره چون او اون کلیساها رو هرگز ندیده بود و اعضای اونها رو نمیشناخت و اما وقتی برای قرنتیان، قلاتیان، فیلیپیان، نام می نوشت او به خوبی اونها رو می پولس پولوس در سفر بشارتی دومش از قرنتوس دیدار کرده بود و کلیسای در اونجا بنا کرده بود که در باب هجده اعمال رسولان شرح اون نوشته شده پولس نزدیک به هجده ماه رو در قرنتوس سپری کرده بود و به خوبی ایمانداران اونجا رو می پولس پولوس سه سال و نیم در افسوس مانده بود در اواخر سفر بشارتیش در افسوس و از شهر قورنتوس دیدار کرد. و از کلیسای قورنتوس نامهایی دریافت کرد. ظاهرا اون نامه این احساس رو در پولس بیدار میکنه که اولین کلیسای قورنتوس مشکلاتی داره. پس پولس از قورنتوس دیدار میکنه و زمانی که اونجا بود، افرادی که در خانه خلوه زندگی میکردند پولس را به کناری میکشند و چیزهایی درباره مشکلات واقعی کلیسا در قورنتوس به او میگه. و همینطور از طریق نامهایی که به او مینویسند، از کسانی که در خانه خلوت بودند، پولس درباره مشکلات کلیسای قرنتوس مطلع میشه. بر اساس ای که برای کلیسای قورنتوس نوشته میشه، پولس خودش رو به عنوان شبان اونها معرفی میکنه. نه به عنوان یک الهیات دان. در دوم قرنتیان باب 11، پولس لیستی از رنجهایی که برای رساندن پیغام خدا کشیده رو عنوان میکنه. شلا خوردن، غرق شدن کشتی، خطر راهزنان، سنگسار شدن و تمام چیزهایی که عنوان میکنه با توجه به بودن تمام این مشکلات در انتهای لیست پولوس میگه بار نگرانی برای همه کلیسا هاست که هر روز بر دوش من سنگینی میکنه سنگینی کردن وظایف شبانی در کلیسا کلیساها مثل اولین کلیسای قرنتوس که این هم بر اون لیست اضافه میشه برای اینه که پولس نقش شبان رو برای کلیسای اول قرنتوسیفا میکنه. او به خاطر نگرانی وضعیت این کلیسا رنج میکشه. همونطور که در ادامه مطالعه نامه پولس به قرنتیان شما در درمی‌یابید که این نامه یکی از شاهکارهای پولس هست، اما متوجه میشید که شاهکاری از نوع دیگره. این همون چیزیه که ما بهش شاهکار شبانی میگیم. به خاطر اینکه کلیسای قرنتیان مشکلاتی داشت و همینطور به این خاطر که پولس رسول در الهام روح القدس این مشکلات رو حل میکنه. شما باید به دنبال گنجهایی باشید که از درون قلب این شبان رسول بیرون میاد. اگر کسی از ما شبانی کلیسایی رو بر عهده داره، باید برای مشکلاتی که در کلیسای قرنتس وجود داشت خیلی خیلی سپاسگزار باشه. پولس در الهام روح القدس قلبش رو برای این افراد باز میکنه و با اونها مشاوره الهی در رابطه با مشکلاتشون میده. در اصل مشکلاتی که ما امروز در کلیساهامون داریم با مشکلاتی که کلیسای قرنتوس داشت فرقی نداره پس ما باید این راه های الهام شده به پولس که باعث راهنمایی کلیسای قرنتوس شده رو به کار بگیریم و اونها را برای مشکلات کلیسای خودمون به کار بگیریم ما برای مشکلات کلیساهایمان راه های الهی داریم در بخش اول میخوام با هم نگاهی به نامه قرنتیان بندازیم تا به شما نشون بدم چه چیزهایی رو مطالعه کردیم در بخش دوم من شروع به بررسی باب به باب کتاب می کنم یا شاید باید بگم که مسئله به مسئله این پولسی که در این نامه میبینیم با پولسی که در نامه به رومیان بود خیلی فرق داره ما از این بیشتر خوشمون خواهد اومد تا از پولسی که در کتاب رومیان بود به این خاطر که در این نامه شما چیزهایی رو میخونید که ممکنه در زندگی شخصی یا زندگی شبانیتون تجربه کرده باشید. اول از همه من تحت تأثیر نحوه شروع پتروس برای راهنمایی و حل مشکلات قرار گرفتم. او با تمام وجودش وارد گود میشه تا این مشکلات را حل کنه. تا به حال فکر کردید بعد از اینکه نامه به قرنتیان رسید چه اتفاقی برای خلوه افتاد؟ به این خاطر که کسانی که در خانه خلوه بودند باعث شدند که پولس از وجود مشکلات در با خبر بشه. یک مرد که در یک رابطه نامشروع با نامادری خودش زندگی میکرد، مؤمنان مس که در مراسم عشای ربانی شرکت میکردند، اونها در کلیسا از هم جدا شده بودند. اونها با همدیگر همدلی و اتحاد نداشتند. مشکلات کلیسای قورنتوس از همین قبیل بود. وقتی پولس برای کلیسای قرنتیان و راهنمایی مشکلات اونها می نویسه، یکی از اولین چیزهایی که افراد کلیسای قرنتوس باید یاد میگرفتند این بود: پولوس این اطلاعات را از کجا به دست آورده بود؟ پولوس نمیخواد اصلا در این مورد شکی به وجود بیاد. در این زمان پولوس دیگه یک شبان بالغ شده بود. وقتی که شما شبان جوانی باشید و کلیسایی داشته باشید، فکر کنید که تازه سه هفته است که به اونجا رفتید که یک زوج میان دفترتون و میگن شبان ما احساس میکنیم که باید چیزی در رابطه با فلانی و فلانی و خانمش به شما بگیم شما خودتون دیر یا زود متوجه این موضوع می شدید ولی ما فکر کردیم که اینجوری بهتره تا ما که میدونیم دونیم بهتون بگیم. شبان شما باید یه کاری برای اونها انجام بدید. حالا مشکلشون اینه. اگه اون شبان حکمت داشته باشه با خودش فکر میکنه حالا وقتی که من پیش فلانی و خانومش برم همون موقع اونا می پرسند که شما از کجا متوجه مشکل ما شدید؟ و شبان به اون زوج میگه. میتونم بهشون بگم که شما مشکلشون رو به من گفتید و اونا میگن او نه نه نه شبان بهشون نگید که ما گفتیم ما شهامتش رو نداریم اسم ما رو جلویشون نیارید به وضعیتی نگاه کنید که شبان رو داخل اون قرار دادن اگه اون شبان پیش فلانی و خانومش بره و بعد از خوردن چایی با اونها درباره اشتباه وحشتناکشون صحبت کنه و اونا بپرسن شبان شما از کجا متوجه مشکل ما شدید اون شبان چی میخواد بگه پولس یک شبانه با تجربه است وقتی کسانی که در خانه خلوه بودند شروع به خالی کردن این سطل برای پولس شدند و به او درباره مشکلات در کلیسا گفتند پولس باید به او گفته باشه حالا خلوه گوش کن آیا حاضری که پشت حرفات بیستی خودتون بینید این خیلی مهمه من معتقدم اگه کسانی بیان تا درباره یکی از اعضای کلیسا صحبت بکنن و پولس رسول شبانشون باشه پولس تلفن رو برمی داره و میگه خب بذارید به یه تلفن بزنم و با هم یه صحبت بکنیم اگه اونا بگن او نه نه لطفا این کارو نکنید فکر میکنم پولوس میگه خب پس به این ترتیب وقت رو هدر ندید اگه شما نمیخواین کاری درباره این موضوع و مشکل انجام بدین منظورم یه کار سودمنده. اگه شما اونا رو دوست ندارین که بهش اهمیت بدین یا با من بیاین تا باشون روبرو بشیم پس وقت منو بیخودی هدر ندین به خاطر اینکه حرفاتون سرففا یه سری شایعات بیاساسه من فکر می کنم این راهی بود که پولس از اون طریق سعی می کرد این مشکلات رو امروزه حل کنه. او به ما نشون میده چگونه باید منابع رو در معرض دید اونها قرار بده. درست در مقابل اونها. من مطمئنم زمانی که نامه به قرنتس رسید، تمام کسانی که این حرفا رو به پولس زدند در کنار خانه خلوه ایستادن. پولس نامه رو به وسیله تیتوس میفرسته. وقتی تیتوس این نامه رو به قرنتس میبره، و اونها در مورد هر آنچه که پولس می دونسته خوندن، پولس میگه گروه خانه خلوه به من گفتند. من مطمئنم که تمام آنها رفتن تا خلوه رو ببینند. وقتی پولس میگه اهل خانه خلوه به من خبر دادن او احتمالا به خانه ای که کلیسابوده اشاره داشت. این یک مسئله خیلی جالب در عهد جدید هست. میتونید این را در تمام نامه های پولس پیدا کنید. نزدیک هشت بار. منظور پولس از کلیسا خانه کسی هست که او را ملاقات کرده. در واقع کلیسای اولیه کلیسای خانگی بوده. پولس وقتی به بزرگان افسوس علنا میگه که اونها خانه به خانه تدریس میکنند من معتقدم مشایقی که پولس در کنار دریا با اونها ملاقات کرد، کسانی که پولوس مسئولیت نظارت کلیسای افسوس رو به اونها داد، احتمالا کلیسای خانگی رو در افسوس رهبری میکردند یکی از بزرگترین کلیساهای جهان امروز در سئول پایتخت کره جنوبی هست این کلیسا بیشتر از نیم میلیون نفر عضو داره شبان اون کلیسا دکتر چو یک موتور نیست او یک سوپرستار هم نیست شبانی که به دیدار شبانچو رفته بود به او گفته بود مطمئنا شما اینجا یک سازمان پویا دارید شبانچو حرف او را بریده بود و گفته بود و شما متوجه نمیشید من این کار را انجام ندادم تنها دلیلی که شما میتونید کلیسایی به این بزرگی داشته باشید اینه که من خیلی پیرم تا شبان این کلیسا باشم و من از بقیه مردم خواستم که برای من شبانی کنن اونا سیستم کلیساهای خانگی رو گسترش داده بودند. اونا حدود 400 کلیسای خانگی داشتند که دور هم جمع میشدن و هر کدام شیخی دارند که بر این کلیساها نظارت میکنن هر چهارشنبه شب, شب شبان با این مشایخ دیدار میکرد و برنامه اونها را به اونها اعلام میکرد و بعد هر وقت که هر 400 کلیسا یک یکشنبه به کلیسا میان، نزدیک به نیم میلیون نفر میشه. یه روز دکتر چوب بیلی گراهام تضمین داده که اگر او بخواد میتونه به کره جنوبی بیاد و شبانچو دوست داره که در شب اول یک میلیون نفر جمع بشن. به این خاطر که از تمام اعضای 400 کلیسا خواسته بود که اون شب یک نفر دیگر رو هم با خودشون بیارن و به این ترتیب تعداد اونها در این جرد همایی مذهبی دو برابر میشه. کلیسای فعال و پویای کره جنوبی بر اساس کلیساهای خانگی بنا شده. کلیساهای خانگی به نظر یک استراتژی در عهد جدید به شمار میان. پولس نامه خودش رو به کلیسای خدا در قرنتوس نوشته. کلیسای خدا کلیسای جهانی هست یا همونطور که الهیدانان میگن کلیسای پنهان. کلیسای خدا که در قرنتوس هست. کلیسایی که در این منطقه هست و حالتی آشکار داره. این برای من خیلی جالبه که پولس نامش را به کسانی که در مسیح عیسی تقدیس شدهاند نوشته بعد از اینکه مسیحیان قرنتس رو به عنوان مردمان تقدیس شده اعلام میکنه او شروع به ارائه کردن مشکلات آنها میکنه باید توجه داشته باشیم که واژه تقدیس شده به معنی کمال بیگناهی نیست کلمه تقدیس شده به معنای کسانی هست که جدا شدن که به دنبال مسیح برند پولس همینطور نامه را به کسانی که دوستی صمیمانه ای با عیسی مسیح دارند نوشته. این نامه به ما میگه کسانی که منصوب شده تا مسیح را دنبال کنند ممکن است کماکان مشکلاتی داشته باشند. مردم تقدیس شده در کلیسای قرنتس قطعا مشکلات خاص خودشون رو دارند. اولین مشکل اونها این بود که با هم تفرقه داشتند. اصلی ترین اختلاف اونها در مورد مسئولان بود. اونها فقط کلیسای خانگی نداشتند بلکه تعدادی شبان هم داشتند که اینطور به نظر میاد که یکی دیگر از مشخصه های عهد جدید هست. کلیسای عهد جدید به یک شبان تعلق نداره کلیسای عهد جدید همیشه شبانانی داره هر زمانی که واژه شبان رو در عهد جدید میبینید الف و نون جمع رو هم به دنبال اون میبینید مگر اینکه اون شبان عیسی مسیح باشه عیسی شبان اصلی و ناظر بر کلیسا هست. به جز زمانی که صحبت درباره عیسی هست، واژه شبان در عهد جدید همیشه به صورت جمع به کار برده شده وقتی شما واژه شبان رو میشنوید به شکلی که به نظر میاد اگر به معنای چوپان به کار نره همیشه به شکل جمع به کار میره پولس شبانی بود که کلیسای قرنتوس رو بنا کرد به عنوان شبانی که جایی رو بنا کرده پولس کسی بود که باعث ایمان خیلی از ایمانداران قرنتوس شده بود پولس به مدت 18 ماه در قرنتوس مونده بود پولس در قرنتیان شبانی و معلمی کرده بود او خیلی بالاتر از صرفن یک مبشر یا یک مبلغ دینیه پتروس هم در قرنتوس شبان بوده یک مرد جوان که سخنور و وايز بسیار خوبی هست به اسم آپولوس هم در اونجا هست که در قرنتوس شبانی میکنه در کلیسای قرنتوس شبانان بسیاری بودند ایمانداران قرنتوس در بین این مسئولان دوچار چندگانگی شده بودند یونانیان در قرنتوس مثل یونانیان در آتن روشن فکر بودند اونها فیلسوف دانشمند و سخنوران قابلی بودن این مسئله یه جورایی امروز وارد فرهنگ ما هم شده گاهی وقتی کسی از عبارات پرتمطراق استفاده میکنه مردم میگن تو از حرفای قورنتوسی استفاده میکنی به این خاطر که قورنتیان سخنوران ماهری بودند یکی دیگر از عبارات معروف یونانی این بود که اونها مثل قرنتیان زندگی میکردند اگر اونها میخواستند در مورد افرادی صحبت کنند که وضعیت اخلاقی بسیار بدی داشتند میگفتند طوری زندگی میکنه که انگار یک قرنطیه. اگر کسی را یک قرنتی صدا بزنید، یعنی اینکه اون شخص گناهکار و هرزه است. بعضی از ایمانداران قرنطوس به فضیلت پولوس و آموزههای تبلیغی او علاقمند بودند. پولوس در روزگار خودش ذهن بازی داشت. بعضی از افراد قرنطوس این رو دوست داشتند و به این دلیل به سوی پولوس کشیده شدند. اونها فکر میکردند پولوس بزرگترین شبانان بود. اونها زیاد با پتروس یا آپولوس و یا دیگر شبانان وقت صرف نمیکردند. در قرنتس افرادی بودند که تحصیل کرده نبودند اونها دوست داشتند که روی زمین بشینند و به تعالیم پتروس گوش بدن پتروس خیلی ساده تمام چیزها رو تعلیم میداد. تاکید پتروس بر شناخت خدا بود بعضی از ایمانداران قرنتس به سوی پتروس کشیده می‌شدند از اونجا که کسانی هم فساحت و بلاغت رو ارزشمند می‌دونستند عاشق سخنرانی آپولوس شدند بر اساس استانداردهاشون اونها سخنوری پولوس رو مورد توجه قرار نمی دادند. من معتقدم پولوس بر اساس میارهای روح القدس سخنران خوبی بوده اما بر اساس میارهای ایمانداران قرنتوس اونها فکر نمی کردند که پولوس سخنران زیاد ماهری باشه با این حال آپولوس سخنران ماهری بود و بعضی از ایمانداران قرنتوس به سوی آپولوس کشیده شدند. در چهار باب ابتدایی این نامه پولوس شروع به راهنمایی آنها در خصوص مسئله ی تفرقه در کلیسای قرنتوس میکنه من از شما میخوام که در مورد چهارباب ابتدایی این نامه شبانی الهام شده به پولس فکر کنید ببینید که پولس چگونه در مورد مشکلات جدایی در کلیسای قرنتوس راهنمایی میکنه مطمئن باشید که پولس خیلی سنجیده مثل یک شبان در مورد گروه به گروه شدن کلیسا در قرنتوس صحبت میکنه و حتی به کسانی که در گروه او هستند به زبان خودتان سعی کنید نصیحتی رو که پولس در این رساله و افرادی که باعث نفاق شده بودن خلاصه کنید افرادی که فکر می پولوس بزرگترین شبان در کلیسای قرنتوس است، سپس این نصیحت رو که دو هزار سال قدمت داره در فرهنگ کلیسای زمان خودتون که بیش از یک شبان داره به کار بگیرید این میتونه به شما در درک توصیه های امیق پولس به طرفدارانش در کلیسای خدا که نزدیک به دو هزار سال قبل نیزیستن کمک کنه بعد از اینکه قسمت معرفی و بررسی اجمالی کلی نامه رو تمام کردیم تفسیر حقایق عمیقی که پولس با ایمانداران قرنتوس در میان گذاشته و همینطور راهنمایی راهنمایی‌های پولس در مورد تفرقه در کلیسای قرنتوس رو با شما در میون خواهم گذاشت. آیا ما هم در کلیساهای امروزه تفرقه داریم؟ بعضی ها میگن که مشکلات بیشتر از یک تفرقه وجودایی هست. مشکلاتی هست که تا به حال در دیده نشده. مشکل اصلی این نیست که کلیساها تفرقه دارند اگر شما دو مشکل تفرقه در کلیسای محلی خودتون هستید به چهار باب اول این نامه الهام شده نگاه کنید و ببینید که چطور الهامات شبان رسول به راهنمایی در زمینه تفرقه در کلیسا میپردازه پولس قسمت‌های بسیار عمیق و الهام شده ای رو از زمانی که در مساله تفرقه به راهنمایی میپردازه نوشته وقتی که بررسی اجمالی کل کتاب رو تموم کردیم دوباره به این باب ها برمیگردیم و به صورت عمیق مسئله تفرقه در کلیسای قرنتوس رو مطالعه خواهیم کرد ما خواهیم دید که پولس حقایقی رو راجع به رهبری الهی قوم خدا با ما در میون میذاره او همچنین در مورد نقش روح القدس در انتخاب یک شبان خواه پولس باشه یا کسی دیگر از اهالی قرنتوس که بتونه ایمانداران قرنتیان رو نجات بده صحبت میکنه بعد از اینکه پولس با مشکل تفرقه در کلیسای قرنتوس مواجه میشه، متوجه وجود مشکلات دیگه ای در کلیسا میشه. وقتی پولس باب چهار رو می نویسه، شروع به راهنمایی در مورد مشکل فساد میپردازه که در کلیسای قرنتوس وجود داره. به بنظر میرسه که مردی که احتمالاً از سران کلیسا هست، با نامادری یا زن پدرش رابطه داره و با هم زندگی میکنن. کل کلیسا از این مشکل آگاه بوده. این به این معناست که یک مشکل عمومی بوده به این معنی که کل کلیسا این رو میدونستن شاید کل افرادی که در قرنتس بودن این مشکل رو میدونستند ولی هیچ کس در کلیسا کاری برای حل این مشکل انجام نمیداد کسی که در حال انجام این گناه هست یکی از مسئولان کلیساست ظاهرا یکی از کسانی که در خانه خلوعه بوده این مشکل رو به پولس گفته پس پولس در باب پنجم به این مشکل هم رسیدگی میکنه وقتی باب پنجم رو مطالعه کنید میبینید که پولس در رابطه با این مشکل چه حرفایی گفته مطمئن باشید این ماجرایی که در باب پنجم میبینید در باب دوم دومین نامه ای که پولس برای مردم قرنتس مینویسه هم عاقبتش رو خواهید دید باب دوم دوم قرنتیان بسیار مهمه به این خاطر که دنباله حرف‌های پولس در پنج باب ابتدایی این نامه هست همونطور که دیدید پولس با مسئله فساد در کلیسا مواجه شد. شما چیزی رو میبینید که امروزه بهش انزبات کلیسایی میگن. این انزبات الهام شده کلیسایی هست. من باور دارم که شما با قلبهای برکت یافته میبینید که پولس چطور با مسئولان لغزش خورده رفتار میکنه. آیا ما هم امروز این مشکل رو داریم؟ آیا این اتفاقها ها امروزه در کلیسای شما هم رخ میده؟ البته که این پیشامدها وجود داره. وقتی که اتفاق رخ میدن، ما در رابطه با آنها چیکار میکنیم این همون چیزیه که من از اون به عنوان کتابچه راهنمای الهام شده یاد میکنم منظورم همین کتاب قرنتیان هست من معتقدم که این رساله شبانی پولس به ما نشون میده که چگونه با مشکلاتی مثل فساد در کلیسای خودمون برخورد کنیم در باب شش پولس مشکل دیگر کلیسای قرنتیان رو راهنمایی و حل میکنه ایمانداران قرنتس از دیگر استفاده میکردند این شاگردان همونطور که در روم مشکلات داشتن در اینجا هم مشکل دارند. با این حال این ایمانداران با محبت و توجه برای مشکلات همدیگر کار نمیکردند. اونها همدیگر را به دادگاه می بردن اونها بر علیه هم دیگر شکایت های قانونی میکردند. پولس وقتی درباره این مشکل راهنمایی کرد خیلی آشفته بود. چیزی که باعث ناراحتی پولس شده بود این بود که شما مردم ادعا می کنید که روح القدس درون شماست. و قرنتیان این ادعا را می‌کردند. پولس نامه‌اش رو, رو به عنوان کردن این واقعیت شروع کرده بود که اونها بدون هیچ عطیه ای آمدند و منظور او عطیه روح القدس بود. اونها ظاهرا خیلی افتخار میکردند که بعضی از عطایا را از جمله عطیه زبانها، نبوت و دیگر عطایا را داشتند. پولس در باب شش به با اونها میگه شما مردمی روحانی هستید. شما که تمام این عطایا را دارید، منظورم اینه که روح القدس در شما جاری هست حالا به این خاطر که روح القدس در شما ساکنه، شما ذهنی مثل عیسی دارید. شما میدونید که ذهن عیسی مسیح چگونه است چون در شما روح القدس ساکنه وقتی که شما مشکلی دارید پیش کسی به دادگاه میدید که روح القدس در وی ساکن نیست شما به این قاضی که روح القدس رو نداره میگید در درون ما روح القدس ساکنه ولی با هم مشکل داریم و نمیتونیم با هم کار کنیم تو روح القدس نداری ولی میتونی مشکل ما را حل کنی تو بر ما داوری کن تو حکمت داری و ما نداریم. پولس فکر میکنه که این یک شرارت الهیاتیه پس او به اونها در باب 6 میگه شما باید رنجهای اشتباه را متحمل بشوید شما به خودتان اجازه بدهید که گولتان بزنند اجازه بدهید تا برادرهایتان به شما خیانت کنند تا اینکه آنها را به دادگاه بکشانید و به عیسی مسیح و کلیسای او نام بد در شهر قرنتوس بدهید در واقع پولس قرنتیان را به خاطر دعوا و مرافعه سرزنش میکنه پولوس به اونها میگه اگر اونها واقعا مشکلی دارند به نزد فرد دیگری بروند که روح القدس در او ساکن باشه این باب بسیار مهمیه به این خاطر که این باب به ما تشخیص بین قانون مدنی و قانون کلیسایی یا قانون شرعی رو عطا میکنه چیزی که ما اون رو قانون شرعی میدونیم برگرفته از مشکلات کلیسای قرنتوس هست. یک کلیسای پر از روح باید بتونه مشکلاتش رو خودش حل کنه کلیسا نیازی نداره که به دنیای بیرون و به دادگاه ها مراجعه کنه تا مشکلات درون خودش رو حل کنه این میتونه بر این اساس باشه که شبان شما به شما هایی انجام بده فرض کنید که شما به شبان خودتون بگید که میخواهید کاری را با برادر روحانی خودتون شروع کنید اگر شبان شما کلام رو بدونه و اگر از نامه قورنتیان برای شما استفاده کنه به شما میگه حالا به یاد داشته باشید که شما نمیتونید مدعی قضایی یک دیگه باشید اگه نتونستید با هم کار کنید نمیتونید همدیگه رو به دادگاه بکشونید. به شما توصیه می کنم که مشکلات خودتون رو در داخل کلیسا حل کنید و به عنوان ایماندار نباید برای طرح دعوا به دادگاه بدید. وقتی پولس باب هفتم رو می نویسه، بخش جدیدی رو در نامه شروع میکنه. باب هفت که یک فصل فوق العاده درباره ازدواج هست با این عبارت شروع میشه و اما در خصوص مسائلی که به من نوشته بودید، پولس بعد از نوشتن این جمله فقط در مورد ازدواج صحبت نمیکنه. در بابهای متوالی او به راهنمایی مشکلات دیگه هم می‌پردازه پولس حالا شروع به راهنمایی در مورد مشکلاتی میکنه که او از طریق نامه قرنتیان از اونها مطلع شده ظاهرا از طرف گروه خلوه پولس درباره مشکلات تفرقه مشکلات فساد اخلاقی و مشکلات دیگه آگاهی پیدا کرده. از نامه‌ای که اونها فرستادن پولس درباره مشکلات ازدواج اونها مطلع شده و مشکلاتی که خیلی نزدیک به مشکلات و نظم کلیسا در روم بود. قرنتیان مشکلاتی در رابطه با گوشت‌های قربانی شده برای بت‌ها داشتند. آیا درسته که مسیحیان این گوشت‌ها رو بخورند یا نه؟ اونها در این رابطه مشکل داشتن. پس در باب‌های 8 تا 10 پولس در مورد این مشکل‌ها هم راهنمایی می‌کنه. در باب 11 پولس درباره چیزهای جسمانی می‌نویسه وقتی درون زن یا مردی روح ساکنه، اونها میتونن تصمیم بگیرن که در راه روح القدس گام بر دارند یا در راه جسم وقتی که یک فرد روحانی تصمیم میگیره که در راه جسمانی گام برداره داره پولس به این فرد لقب جسمانی میده افراد روحانی میتونند کارهای جسمانی انجام بدن نامه قرنتیان این رو اثبات میکنه یازده باب ابتدایی رو به اصطلاح جسمانیت هم گفتن دکتر جی کمپل مورگان 11 باب ابتدایی قرنتیان را اصلاح جسم نامگذاری کرده در باب یازده به وضوح به نظر میرسه که ایمانداران قرنتس در پی این هستند تا جایگاهی را به زنان در کلیسا بدن ما سعی میکنیم که در مورد این مسئله صحبت کنیم پولس برای اونها در باب یازده صحبت هایی داره در نیمه دوم باب 11 پولس راهنمایی هایی درباره مراسم اشاء ربانی میده که امروزه شام خداوند یا مراسم عشای ربانی نیز خونده میشه پولس دستورهای زیبایی در رابطه با شام خداوند به ما میده وقتی که پولس باب دوازده رو شروع می‌کنه، باز هم در همون بخش هستیم. یازده باب ابتدایی کتاب به اسم مسائل شناخته میشن، با شروع آیه یک از باب دوازده شما می‌تونید بگید که به دنبال باب دوازدهم ام راه حل ها ظاهر میشن. به این خاطر که در یازده باب اول پولس راهنمایی‌هایی درباره مشکلات می‌کنه، ولی در باب دوازدهم هست که او یک راه حل مخصوص راه میده و او به حل هر مشکلی می‌پردازه وقتی که او به مشکل تفرقه می‌پردازه یک راه حل مخصوص میده او این راه حل مخصوص رو در رابطه با فساد اخلاقی مردی که در باب پنج دیدیم و مشکل دعوای غذایی در باب شش هم ارائه میده این راه حل رو در خصوص مشکلات ازدواج گوشت قربانی برای بت‌ها زنان در کلیسا اشای ربانی هم ارائه میده پولوس راه حل مخصوصی رو در همه زمینه ارائه میده. در باب دوازدهم پولس یک راه حل کلی رو که تمام مشکلات مسیحیان کلیسا رو حل میکنه ارائه میده. پولس میگه و اما در خصوص تجلیات روحی برادران نمیخواهم که قافل باشید. ظاهراً قرنتیان در خصوص بعضی از چیزهای روحانی نادان بودند یا می‌خواستند که همونطور جسمانی بمونند پولس در باب دوازدهم در مورد چیزهای روحانی با قرنتیان صحبت میکنه. اول از همه عمل روح القدس، قرنتیان در مورد روح القدس میدونستند ولی نمیدونستند که روح القدس چگونه عمل میکنه. در باب دوازدهم ام پولس به اونها در رابطه با ماهیت و عمل روح القدس هم صحبت میکنه. در باب 13 پولس با قرنتیان از محبت آگاپه حرف میزنه. پولس به اونها و به ما یکی از بهترین بابهایی رو که نوشته میده. ما به اول قرنتیان باب سیزده باب محبت میگیم وقتی که پولس این باب رو می نویسه به قرنتیان میگه که چگونه میتونن مشکلات جسمانی کلیسا را حل کنند بعد از صحبت درباره ماهیت و عمل روح القدس و عطایای روح در باب دوازدهم، در پایان باب پولس میگه اما شما با اشتیاق تمام در پی عطایای بزرگتر باشید و اینک من عالی طریق را به شما نشان میدهم بعد از این پولس با به محبت رو به ما میده. محبت آگاپه صرفاً یک عتیه روحانی هست که میتونه مشکلات بسیاری رو در کلیسای ما حل کنه. در اول قرنتیان باب 14 پولس چیز بسیار زیبایی رو شرح داده، جایی که به ما میگه که چگونه باید در بدن عیسی مسیح کار کرد. پولس شرح میده که چگونه اعضای بدن مسیح باید برای یکدیگر اهمیت قائل بشن، یکدیگر رو تقدیس کنن یا همدیگر رو بنا کنن. به طور خلاصه در باب دوازدهم پولوس قدرت روح القدس رو بر ما می میده در باب سیزدهم قدرت روح القدس در درون ما رو می میده و در آخر در باب 14 پولس چگونگی نظمی رو که زمانی که روح القدس بر ما و در درون ما قرار داره می میده وقتی پولوس فصل 15م رو شروع میکنه به قرنتیان درباره رستاخیز مسیح میگه پولوس به اونها میگه رستاخیز یکی از چیزهای روحانیه که میتونه تونه مشکلات کلیسای جسمانی ما را حل کنه. رستاخیز یعنی پیروزی برمرگ مرگ. رستاخیز یعنی بالاتر از رستاخیز عیسی مسیح یا رستاخیز ایمانداران. پولس درباره قدرت رستاخیز که در زندگی من و شما هر روز کار میکنه صحبت میکنه پولس همیشه به رستاخیز عیسی مسیح میشه. پولس همواره در دعا هست تا بتونه قدرت عیسی رو در زندگی خودش پیدا کنه. مثل قدرتی که وقتی مسیح قیام کرد متجلی شد دلیلی که پولس رو ملزم ساخت تا درباره رستاخیز با ایمانداران در باب 15 صحبت کنه این بود که اونها به رستاخیز شک داشتند قرنتیان روشن فکر بودند روشن فکران چیزهای ماورا طبیعی رو باور ندارند اونها رستاخیز رو زیر سوال می به علاوه باید گفت که پولس موضوع رستاخیز رو به این خاطر در این باب گذاشته که با اونها در مورد چیزهای روحانی صحبت کنه تا بتونن مشکلات جسمانی خود رو در کلیسا حل کنند یکی از این مشکلات قدرت رستاخیز بود. در باب شانزده بعد از صحبت در مورد رستاخیز و صحبت‌های بسیار سنگین در رابطه با رستاخیز، پولس خیلی کوتاه و سریع در مورد هدایا صحبت میکنه و اینطور شروع میکنه و اما در خصوص جماوری هدایا این یکی از کوتاه‌ترین و سریع‌ترین حرف‌های پولسه. او ما رو بالا برد و بعد در یک لحظه ما رو پایین میاره و یک صحبت عملی رو سریع بیان می‌کنه. در باب شانزدهم پُلوس درباره جمعآوری هدایا صحبت میکنه در واقع به این معنی که او به مسیحیان میگه که با جمعوری هدایای خودشون که یکی دیگر از نکات روحانیه میتونن یکی از مشکلات کلیسای زمینی خودشون رو حل کنند خب این بررسی اجمالی بود از نامه قرنتیان این بررسی باید به شما نشون داده باشه که ما در این نامه عظیم شبانی پولس رسول چه چیزهایی رو مورد مطالعه قرار میدیم اگر شما عضو کلیسا هستید شکی نیست که شما یکی از این مشکلات را تجربه کردید. پولوس از طریق الهام خدا ما را راهنمایی کنه تا با مشکلات کلیسا مواجه بشیم. در برنامه های آینده هم با ما همراه باشید تا به مطالعه این مسائل بپردازیم. عزیزان آیا تا این لحظه مشکلاتی رو شنیدید که در گروه شما هم وجود داشته باشه یا مسئله‌ای باشه که در موردش سوال داشته باشین؟ همونطور که میبینید ما هنوز درس هایی داریم که باید با همدیگه درمیون در میون بذاریم و اطمینان داریم که در درس های بعدی هم ما رو همراهی خواهید کرد پس شما میخوام اگر دوستی یا شخصی از خانواده شما هست که دوست داشته باشه به کلاس های ما وارد بشه حتما این کار رو انجام بدید و اون رو به دانشکده کوچک مقدس دعوت کنید پس و برنامه ای دوباره از روح القدس می که به شما آرامش عطا کنه و در شما و بر شما قرار بگیره از خدای بزرگ میخوام که حضورش در کنار شما باشه و شما رو از آرامش عظیم خودش پر بسازه. آمین.